کانال تلگرامی هزار افسان داستان های صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده عظیمه علی گلزاده این داستان ماره هفت سر روزی روزگاری پادشاهی تصمیم میگیره به یه سفر دریایی طولانی بره او تمام کشتیهها و دریانوردانش رو جمع می‌کنه و به راه میفته اونا روزا و شبها به راهشون ادامه دادن تا به یه جزیره ای رسیدن که پر از درختهای بلند بود و زیر هر درخت یه شیر خوابیده بود به وحض اینکه افراد پادشاه از کشتی پیاده شدند همه شیرها بلند شدند تا آنها را تکه تکه کنند پس از یه نورد طولانی اونها موفق شدند حیوانات وحشی را از بین ببرند اما بیشتر افراد کشته شدند و تعداد کمی هم که زنده موندن از میون جنگل ها گذشته و در آن سوی جزیره به باغ زیبایی رسیدند که از انواع گیاهان دنیا در آن دیده میشد درون باغ سه چشمه هم وجود داشت از اولین نقره دومی طلا و سومی مروارید میجوشید همه مردها جلو رفتند و کیسه هاشون رو از این اشیای قیمتی پر کردند در وسط باغ اونها یک دریاچه بزرگ دیدن وقتی کنار آنها رسیدند دریاچه شروع به حرف زدن کرد و به اونها گفت شما چی هستید و چطور به اینجا اومدید آیا ملاقات پادشاه ما اومدید؟ اما اونها اونقدر ترسیده بودن که نمیتونستن جواب بدم. دریاچه گفت حق دارید به ترسید چون با مسئولیت خودتون به اینجا اومدید. پادشاه ما که هفت سر داره الان خوابه و چند دقیقه دیگه بیدار میشه و برای هم بام کردن پیش من میاد. وای بر کسی که توی باغ جلوی چشم او باشه. چون فرار کردن از دست او غیر ممکنه اگر میخواید جونتون رو نجات بدید به حرف من گوش کنید لباساتونو در بیارید و اونها رو در جادی که از اینجا تا قصر ادامه داره پنگ کنید وقتی پادشاه روی این زمین نرم بخزه خیلی سرحال میشه میشو دیگه شما رو قورت نمیده البته کمی تنبیه میشین ولی بعد اجازه میده که برین. مردها به نصیحت دریاچه عمل کردند و منتظر موندند تا ببینند چی پیش میاد نزدیک ظهر زمین شروع به لرزیدن کرد و از چند نقطه شکافته شد و از دل شکاف ها شیر و پلنگ و حیوانات وحشی دیگه بیرون اومدند و قصر را محاصره کردند هزاران هزار درنده دیگه هم از قصر خارج شدند و پادشاه خود یعنی مار هفت سر را همراهی کردند مار از روی لباس هایی که برای او پن شده بود قضید و خود را به دریاچه رسوند و از او پرسید چه کسی این پارچه های نرم را سر راه او ریخته دریاچه پاسخ داد که این کار کسانی هست که برای ادای احترام به اونجا آمدند پادشاه دستور داد مردها را نزد اون بیارن و اونها با حالتی آجزانه اومدند و در چند جمله همه چیز تعریف کردند. مار با صدای نیرومند و وحشتناک به اونها گفت چون شما به خودتون جرأت دادید به اینجا بیاید من براتون مجازاتی در نظر میگیرم. شما باید هر سال از بین مردم کشورتون دوازده دختر و دوازده پسر جوان رو برام بیارید تا من اونها رو قورت بدم اگه به این دستور عمل نکنید من همه این مملکت شما را از بین میبرم سپس یکی از درندگان را همراهشون فرستاد تا راه خروج از باغ را نشونشون بده اونها جزیره را ترک کردند و به کشورشون برگشتن و برای همه تعریف کردند که چه اتفاقی براشون افتاده زمان به سرعت گذشت و زمانی رسید که پادشاه درندگان منتظر بود تا دوازده دختر و دوازده پسر جوون رو براشون ببرن. بنابراین پادشاه ای منتشر کرد و از دوازده دختر و دوازده پسر جوون خواست برای نجات کشورشون داوطلب بشن. خیلی زود جوونهای زیادی که تعدادشون بیشتر از مقدار لازم بود آمادگی خودشون رو اعلام کردند. کشتی جدیدی با بادبانهای سیاه سیاه ساخته شد و پسرها و دخترهای جوون که برای پادشاه درندگان انتخاب شده بودند سوار شدند و به طرف جزیره به راه افتادند وقتی به مقصد رسیدند یک راست به طرف دریاچه رفتند این بار نه شیرها از جاشون تکون خوردند نه چشمی در کار بود و نه دریاچه حرف زد اونها کمی منتظر موندند چیزی نگذش که زمین شدیدتر شدید تر از قبل شروع شد مار هفت بدون اینکه هیچ درنده اونو همراهی کنه جلو اومد و تا چشمش به کسانی افتاد که منتظرش بودن همه اونها رو یک جا غورت داد کشتی به کشورش بازگردنده شد این برنامه هر سال تکرار شد تا اینکه سالها گذشت حالا پادشاه کشور ما تمزده و ملکه هر دو پیر شده بودند اما اونها فرزندی نداشتند یک روز ملکه کنار پنجره نشسته بود و گریه میکرد چون بچه نداشت و میدونست با این اوزا بعد از مرگ پادشاه تاج و تخت به غریبه ها خواهد رسید ناگهان پیرزن زن ای کتایی او ظاهر شد که سیبی در دست داشت و گفت ملکه ی من چرا گریه میکنی چه موضوعی باعث ناراحتی شما شده ملکه جواب داد افسوس مادر مهربون. قصه من از نداشتن بچه. پیرزن گفت ناراحتی شما به این خاطره. پس گوش کن. من راهبه سومه ریسندگی هستم. مادرم قبل از مرگش این رو به من داد. هرکس این سیب سیبرو بخوره بچه دار میشه. ملک مقدار پول به پیرزن داد و سیبرو خرید و بعد سیبرو پوست کند و خورد و پوستشو از پنجره بیرون انداخت همون موقع مادیانی که در حیات میدوید از اونجا رد شد و پوست میوه رو خورد و پس از مدتی ملکه صاحب یک پسر شد و مادیان هم یک قرع اسب به دنیا آورد پسر و قرع با هم بزرگ شدند و همدیگر رو مثل دو برادر دوست داشتن پس از گذشت چند سال شاه و ملکه مردند و پسرشون که اون زمان نوزده سال داشت تنها موند. یه روز وقتی او و اسبش با هم حرف میزدند، اسب به او گفت: گوش کن. من تو رو خیلی دوست دارم و آرزوی سعادت تو و کشورت دارم. اگه میخوای مثل قبل هر سال 12 دختر و 12 پسر جوون رو برای پادشاهی درنده ها بفرستی، کشورت به زودی نابود میشه. به پشت من سوار شو، میخوام تو رو پیش زنی ببرم که میتونه بگه چطور میشه ماره هفت سر و کشت. پسر سوار اسب شد و حیوان راه درازی رفت تا به یک کوه تو خالی رسیدند. چون در آن یک قار بزرگ زیرزمینی وجود داشت. داخل قار پیرزنی مشغول ریسندگی بود. اونجا راه ورودی راهبه ها بود و پیرزن ریس اونها بود. اونها تمام وقت مشغول کار ریسندگی بودند. به همین خاطر اون صومعه چنین اسمی داشت دور تا دور دیوارهای غار پر از تختهایی از جنس سنگ بود که روی هر کدوم یه راهب خابیده بودند و در وسط چراغی روشن بود وظیفه راهب‌ها بود که به نوبت مواظب چراغ باشند تا خاموش نشه و اگه به خاطر بیاحتیاطی کسی چراغ خاموش میشد، بقیه او رو محکوم به مرگ می‌کردند به محض که چشم پسر پادشاه به پیرزن افتاد که مشغول نخریسی بود به پای او افتاد و خواهش کرد که بگی چطور میشه مار هفت سر را بکشه زن پسر را بلند کرد و اونا در آغوش گرفت و گفت میدونی پسرم من همون کسی هستم که اون راهبه را سراغ مادرت فرستاده و باعث شدم تو این اسب به دنیا بیای تو با کمک این اسب میتونی دنیا را از شر حیولا خلاص کنه من به تو میگم که چی کار باید بکنی؟ روی اسبت مقداری پنبه بار بزن و از یه راه مخفی که به تو نشون میدم و حیوانات وحشی اونجا را بلد نیستن خودتو به قصر مار برسون. در اونجا میبینی که پادشاه رو تختش خابیده و دورتا دورش زنگوله های آویزونه. در کنار این تخت یه شمشیر آویزون شده که فقط به اون میتونی مار را بکشی. چون اگه تیغش بشکنه یه تیغه جدید به جاش در میاد. بنابراین تو میتونی همه ی هفت سر حیولا را قطع کنی. برای فریب دادن حیولا باید این کار رو کنی. خیلی آروم به تختش نزدیک شو با پنبه همه ی زنگ دور تخت را از کار بنداز. بعد خیلی سری شمشیر را بردار و با آن به دوم حیولا ضربه بزن. این کار اونو بیدار میکنه و اگه چشمش به تو بیفته تو رو گیر میندازه. اما تو باید فوری اولین سر او رو قطع کنه و منتظر بمونی تا دومی رو بالا بیاره بعد اونو هم قطع میکنه همینطور ادامه میدی تا همه هفت سر را از بدنش جدا کنی بعد راهبه پیر برای شاهزاده آرزوی موفقیت کرد و پسر با شجاعتی که داشت از راه مخفی که زن به اونشون داده بود خودشو به قصر ما رسوند و همه دستورات راهبه را با دقت اجرا کرد و خوشبختانه موفق شد حیولا را بکشه به محض اینکه حیوانات درنده از مرگ پادشاهشون باخبر شدند با عجله خودشون رو به قصر رسوندند اما پسر مدتها قبل سوار بر اسبش از اونجا رفته بود و دیگه دست کدوم از اونها بهش نمیرسید اونها با سرعت زیاد دنبالش رفتند اما فهمیدند که رسیدن به او غیرممکنه شاهزاده صحیح و سالم به وطنش برگشت و اینگونه بود که او کشورش را از بار ظلم و ستم نجات داد.